یه بحثی داشتیم که وقتی که میگیم جایگاه حدیث در علوم مختلف این علوم مختلف چه علومیه بعد گفتم که ما برای علوم مختلف سه تا حالت می زدیم یکی علوم مختلف بشریه بدون هیچ موضوع خاصی که در این جهر جایبای حدیث در علوم گوناگون، علوم مختلف حتی شامل علوم فنی و مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و علوم اسلامی و خلاص همه این موارد و مسائل میشه اگر که منظور از علوم مختلف علوم مختلف بشری باشه صرف نظر از موضوع وقت ما یه بحثی باید داشته باشیم شبیه بحثی که در حوزه قرآن ممکنه پیش بیاد و امروزه در حوزه تفسیر قرآن و علوم قرآنی یه بحثی وجود داره به نام تفسیر علمی قرآن که میوه تفسیر علمی اجاز علمی قرآن در این درس که حالا شما هم ممکنه قرآن را هم داشته باشید فرض بلیلی که قرآن کریم بعض از آیات قرآن کریم یک رازهایی رو از طبیعت طبیعتی که خدا خلق کرده در بر داره و این رازها گاه اوقات در پرتو علوم این رازها برملا میشه مثلا فرض بفرمایید بعضی ها معتقدند که در قرآن کریم قانون زوجیت عامه مطرح قرآن کریم درباره خلقت انسان و مراحل تحول جنین اظهار نظر کرده قرآن کریم درباره پیدایش آسمان ها و ماده تشکیل دهنده آسمان و زمین اظهار نظر کرده حالا به شکل سریع هم هزار نظر نکرده باشه به شکل اشاری هزار نظر کرده و ما در تفسیر علمی قرآن شاهد اعجاز علمی قرآن خواهیم یعنی مسائلی که در سطح فهم و دانش عرب 1400 سال قبل نبود ولی قرآن به صورت در بسته و اشاری عرض شود اینها رو آورده حالا با مرور زمان و با پیشرفت علوم عرض کنم این مسائل برای بشر فاش میشه و روشن میشه و روز به روز جلوه‌ای بر عظمت قرآن بر ابعاد علمی قرآن برای بشر بیشتر مکشوف میشه الان خب این یک نظریه است که ایده زیادی طرفدار داره که اینا مکتبی به نام مکتب تفسیر علمی قرآن رو به وجود آوردن و وجهی از وجوه اجازه قرآن رو عبارت از اجازه علمی قرآن می‌دونن حالا اگر ما مشابه سازی کنیم به دلیلی که روایات از پیغمبر صادر شده، روایات تفسیری از پیغمبر صادر شده و از نظر شیعه روایات تفسیری از امامان شیعه صادر شده که جانشینان رسول الله هستند میشه تصور کرد که حدیث که به مسابه تفسیر قرانه میتونه در علوم مختلف یک حرفایی برای گفتن داشته باشه و ما مثالی هم حتی زدیم از نهج البلاغه یا از روایات امه که بوی اظهار نظرهای علمی میده. این حالا یک معنا از علوم مختلف. دومین حالتی که درباره علوم مختلف گفتیم گفتیم حالا ممکنه ما بیاییم این علوم رو یه مقدار محدودش بکنیم و رشته از علوم رو خارج کنیم، این علوم رو یه مقداری محدودش بکنیم مثلا بگیم شاید مراد از جایگاه حدیث در علوم مختلف علوم مختلف انسانیه و ببینیم حدیث در علوم مختلف انسانی حالا علوم تجربی و فنی و مهندسی و زیست شناسی رو فعلا شما خارش کنید یک علوم انسانی رو در نظر بگیرید. خب علوم انسانی رشته ای از علوم که موضوع موضوع آن انسانه انسان و ابعاد وجودی انسان ابعاد شخصیتی انسان مخصوصا اون ابعادی که بیشتر به جنبه تربیت و هدایت و واقعا اداره انسان ارتباط داره حالا درسته که تکنولوژی در خدمت انسان میتونه باشه حتی نوعی علم برای انسانه ولی علوم انسانی در درجه اول علومی هم که با اون ساختار شخصیت و روان انسان ارتباط دارن علوم مثل مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت که معمولاً الان یه رشته از علوم هستن اینا علوم انسانی هستن و, و از آنجای که قرآن متکفل هدایت انسانه و احادیث هم به طبع قرآن در راستای هدایت و تربیت انسان از پیشوایان دینی صادر شدن شاید مراده از علوم مختلف علوم گوناگون انسانی در مقابل علوم فنی و مهندسی و زیستی و سا سایر عمومی که حالا یه خورده دورتره نسبت به انسان یا ممکنه مثلا هم فقط مختص جسم انسان باشن ولی خیلی ارتباط روحی با انسان ندارن در این زمینه من در این اعتبار یعنی تعبیر دوم اینو عرض می که در زمان معاصر بعضی از پژوهان، علوم مختلف رو علوم مختلف انسانی فرض کردند و سعی کردند درن به دنیای روایات و روایات رو یک دسته بندی هایی بکنن بر پایه علوم انسانی من از این سنخ از حدیث‌پژوهان دو دوتا یا لااقل سه تا اثر رو برای شما نام میبرم یکی کتابیه به نام الحیات شاید شما کتاب الحیات رو به گوشتون خورده باشه این کتاب از آقایان حکیمیه که عبارت از سه تا حکیمی محمد رضا حکیمی علی حکیمی محمد حکیمی که اینا رو ما میگیم آغایان حکیم. حتا نمیگوین برادران حکیمی چون این سه نفری که من عرض کردم سه تا برادر نیستن اینا بعضن اسمشون حکیمیه ولی خب نسبت‌های مثلا گاهی فرس خوئی پسرعمویی یا هم فامیلی با هم دارن ولی لزومن برادر نیستن در رأسشون استاد محمد با محمد رضای حکیمیه اون دو نفر دیگه حالت دنبال رو و همکار رو کتاب اله رو اگر که شما دیده باشید این کتاب اسمش از این آیه قرآن گرفته شده یا ایوهاللزین آمنون استجیبو لله وللرسول ازاد آکم لما یعیی ای مؤمنان خدا و رسول او را اجابت کنید اونم زمانی که پیغمبرش شما را به امری صدا میزنه که حیات شما در بردارد استجیبو للا ولی رسول ازاد آکم لما یکی کن اگر کتاب الحیات رو ببینید که احتمالا مجلداتش در همین کتاب شما وجود داره متوجه میشید. که این آقایان حکیمی انگیزشون از تعلیف این کتاب این بوده که اسلام را حالا اسلام متون اسلامی مواد اسلامی عبارت از قرآن و حدیث در درجه اول این متون اسلامی آیات و روایات رو بیان تبقه بندی کنن بر پایه علوم انسانی اونم طبقه بندی در حدی که بتونن مدبنش کنن و اعلام بکنن که اسلام برای هدایت جامعه کمبودی نداره خب یه جامعه ارز کنم بشری رو در نظر بیرید این جامعه بشری یک ساختار و حکومتی داره یک اقتصاد داره یک باید به یک شکلی مدیریت بشه و مردمش هم یه روابطی با هم دارن که این روابط علمی به نام علم حقوق میتواند این روابط رو تنظیم میکنه بنابراین وقتی که شما وارد این کتاب میشید چند جلش اختصاص داره به حکومت اسلام چند جلش اختصاص داره به اقتصاد اسلام چند جلش اختصاص داره به مدیریت اسلامی یعنی آنچه رو که یک جامعه برای اداره سعی بهش نیاز داره اینا ادعا کردن که در آموزه های اسلامی موجوده فقط ما باید این آموزه ها رو بیاریم این آموزهها ها عبارتند از قرآن و روایاتی که زیر این آیات وجود داره در منابع شیعی و در منابع اهل سنت اومدن اینا رو شناسایی کردن، استخراج کردن، طبقه بندی کردن و ارائه دادن. و اسمش هم بودستان الاحیاء و مدعیان که این کتاب موفق شده نیازمندی‌های یک جامعه رو برای اداره صحیح شناسایی کنه و از آیات و روایات اینا رو در بیاره، طبقه بندی بکنه و ارائه بده به شکل یک مدل علمی. مخصوصا این کتاب با پیروزی انقلاب اسلامی خیلی مورد توجه گرفت حالا الان ما البته الان سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و ما قانون اساسی داریم قوانین معمولی داریم که مجلس شورای اسلامی و میکنه برای تصور میکنیم اول انقلاب نما تجربه مقاطی داشتیم نه کتابی داشتیم اساسنامه ای داشتیم قانونی داشتیم این کتاب که دمدمای پیروزی انقلاب با این اندیشه پس کنا خدمتتون منتشر شد خیلی هم مورد توجه قرار گیره من حالا در این کتاب تاریخ حدیث که بعضی از بعضی از شما رابطه کتاب تاریخ حدیث و دیدید و دارید و از ندارید من راجع این کتاب الهیات آقای آقایان حکیمی یکی دو جمله میخونم ببینید این از مقدمه کتاب برکنید کنم که معلفان در مقدمه کتاب مجموعه الهیات را چنین تعریف کردن الهیات مجموعه ای دائرت المعارف گونه منکس کننده یک نظام فکری عملی به دست آمده از متن اسلام، شامل پاسخ به بسیاری از مسائل زندگی متحول انسانی بر پایه پیریزی حاکمیتی درست. حالا، حالا تعریف من، معلفان به اندازه توان و فرصت خویش کوشیدن، تا با جستجوی آیات و احادیث و دریافت موضوعی و مجموعی آنها مسائل بشری و موضوعات حیات و آگاهی و تکلیف را مطرح سازم و پاسخ این مسائل را از دو منبع کتاب و سنت در چهارچوب یک دستگاه منسجم فکری عرضه بدارم همچنین در معرفی محتوای آن میگویند این کتاب تنها مجموعه ای از آیات و روایات نیست ما فرض در این کتاب نایمیدین یه مجموعی از آیات و روایات رو فقط بیاریم و چه هم قرار بدیم بلکه تنظیم جان و ایدئولوژی اسلامی با التزام دقیق به اینکه این جهانشناسی و این و ایدولوژی به دست آمده از قرآن و حدیث و از فهم مجموعی و موضوعی آنها باشد بدین گونه این کتاب با آنکه در آن مسائل گوناگون الهی اعتقادی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی روحی، معنوی، هنری، فلسفه تاریخی دفاعی نظامی شده در طرح کلی خود ارزه کننده یک نظام مکتبی و یک جریان پیوسته فکری نه فصلهایی پراکنده و موادی گزیده و فاقد ارتباط انداموار در واقع یک سیستم جهانینی و پیوسته رو اینا مدعیان که در این کتاب ارائه کردم که برپایه آیات و روایات خب با این فرض روایات باید در موضوعات گوناگون وارد شده باشه دیگه موضوعات گوناگون علوم انسانی این یک اثر اما اثر دوم اثر دومی که معرفی میکنم که برپایه این اندیشه به اصطلاح طراحی شده کتاب اولا کتاب های دارالحدیث ما یه سازمانی داریم در قم به نام سازمان دارالحدیث که در رأسش آیت الله ری البته این سازمان یک سازمان بسیار مفصلیه آیت الله ری شهری هم ده ها محقق و تیم تحقیقاتی رو به خدمت گرفتن که در حقیقت اینا دارن کار میکنن شبال روز مخصوصا روی روایات روایات هم روایات شیعه و سنیه یعنی اگر شما برید سازمان دارالحدیث میبینید به همون اندازه که منابع شیعی وجود داره و داره روش کار میشه منابع حدیثی اهل سنت هم وجود داره در روش کار میشه آثاری هم که منتشر میشه این آثار احادیث شیعه و سنی رو کنار هم عرض میکنه در بابهای مشترک. در بابهای مشترک. خب یکی از آثاری که مناسب باقیه ری ریشه‌هاییه، بچه بساز شما هم شنیده باشید اسمش رو کتابی به نام میزان و حکم. خب کتاب میزان و یک دوره روایات اسلامی که بر اساس دو مجموعه بزرگ شیعه و سنی طراحی شده مجموعه شیعیش بهار مجموعه سنیش کنز العمال کنز العمال متقی هندی خب کنزرانمال برای خودش یه مجموعه بزرگ روایی نبویه اهل سنت نویشتنش دهارالانوارم که یه مجموعه بزرگی شیعه دیگه و روایات حکمی میزان الحکم از این دو مجموعه بزرگ آورده شده طبقه بندی موضوع شده در موضوعات گناهون که حالا جنبه تربیتی داره حقوقی داره، روانشناسی داره، جامعه شناسی داره و در یک کلمه اخلاقی داره. اخلاق یک مفهوم عام می دیگه. طبقه بندی شده در موضوعات بناگون ارائه شده. این کتاب میزان حکمت، خب یک کتاب بیش از سی سال از عمرش میگذرد و چندین بار تجدید چاپ شده در ورژن‌های گوناگون یعنی در واقع ما مثلا میزان ال ده هزار حدیثی داریم تا میزان ال هزار، 20000 و چند هزار حدیثی داریم چون چندین بار که این کتاب تجدید چاپ شد هی تکامل بوده کرد تکامل پیدا کرد ولی من حالا اون کتابی که قصد داشتم معرفی بکنم گفتم دو تا کتاب یکیش الحیات کتاب دومی که میخواستم معرفی بکنم میزان ال نیست یک دارن حکمتنامه بروان مقدمه گفتم کتابی که میخوام معرفی بکنم از انتشارات سازمان دارالحدیس اسمش هست نامه پیامبر اعظم اینو می خواهم معرفی کنم پیامبر اعظم حدود ده دواز ده سال قبل می دونید که رهبر انقلاب هر سالی رو یه اسمی میذارم یه سالی رو سال پیامبر اعظم نامگذاری کردن حتما یادتونه در اون سال خب یک پژوهش هایی یه تحقیق هایی شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صورت پذیرفت سازمان دارالحدیث به جهت نامگذاری اون سال به نام پیامبر اعظم آمدن این مجموعه حکمتنامه پیامبر اعظم رو منتشر کردم. این حکمتنامه پیامبر اعظم یک کتاب هفت جلدی عربیه و به فارسی که ترجمه شده شده چارده جلد یعنی دوبله دیگه یک کتاب عربی رو شما وقتی که ترجمه می‌کنید به فارسی که یه صفحه عربی باشه یک صفحه فارسی باشه قایدتا دو برابر ماشه بشه چارده جد آنچه که مهمه اینه که در این کتاب احادیث حکمت آمیز رسول الله در ده محور طبق شده در ده فصل یا ده محور طبق مندی شده حالا من این محور رو نام میبرم تا اونجایی که حافظم یاری می کنه حکمت تربیتی یک فصل حکمت اقتصادی یک فصل حکمت سیاسی یک فصله حکمتهای حقوقی یک فصله حکمتهای از کنم خدمتون اخلاقی یک فصله حکمتهای اعتقادی این هم یک فصله قالبا انابین این فصل‌ها ما رو به یاد یکی از علوم انسانی میاندازد مثلا حکمت های تربیتی حالا علوم تربیتی رشته علمیه حکمت های مثلا روانشناسی علم روانشناسی یک علم، حکمت های اقتصادی علم اقتصادی یک علم الان حکمت های حقوقی علم حقوق یک علم. نتیجه که من می‌خوام بگیرم اینی که میشه با این نگاه رفت سراغ عقادیست و عادیس را بر حسب رشته های علوم انسانی طبقه بندی کرد چون بحث ما که جایگاه حدیث در علوم مختلف خب این علوم مختلف چه علومیه؟ میگیم علوم انسانی بله چون الان کتاب حکمتنامه پیام بر اعظم آمده روایات رسول الله رو روایاتی که بوی از حکمت میده اولا سخنان پیامبر آموزه های نبوی همش حکمته تو قران کریم میفرماید که هوالذی بعث فیل امیننا رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و بعد میفرماید و یعلمهم الکتاب ول حکمت سن آموزهای پیغمبر همش حکمتیه همش حکمت پیغمبر هرچی چی به یه حکمت حکمت یعنی چی یعنی دانش راستین و قطعی که به قول معروف شک بردار نیست اصل این معنای حکمت معنای واقعیه حکمت اینه پیغمبر هرچی به یه غیر قابل تردیده از جهت هدایتگری ما همش حکمته ولقد آتی نالغمانن حکمه انشکر دلال راهی پیامبر اسلام رو اومدن دستبندی کردن در ده محور که بسیاری از این محورها یکی از نامهای علوم انسانیه بنابراین این دومین اراده از جایگاه حدیث در علوم مختلف که این علوم مختلف رو علوم انسانی تصرف میشه خب همین تا اینجا هستم و سومین اراده رو هنوز وارد نشدم به شما عرض بکنم که در دوران معاصر رشته ای از مطالعات خیلی توصیه میشه خیلی مورد تشریقه که به استراح میگن مطالعات میان رشته ای منظور از مطالعات میان رشته ای است که حداقل اقل این مطالعات بین دو حوزه و بین دو رشته صورت میگیره حالا ممکنه این متانات بین چند رشته هم واقعه بشه ولی ما لا اقل میگیم بین دو رشته یکیش رشتهش قرآن و حدیثه رشته دوم میتونه اقتصاد باشه میتونه روانشناسی باشه میتونه جامعه شناسی باشه و به سرا موضوعاتی که مخصوصا در علوم انسانی ما شده رو هست مثلا اقتصاد اسلامی این اقتصاد اسلامی صرف نظرین از اینکه داریم یا نداریم یک عنوان بینرشته ایه حکومت اسلامی مدیریت اسلامی حتی مثلا این فلسفه ای اسلامی صرف از که داشته باشیم یا نداشته باشون این بینرشته ایه و الان آنچه که در جامعه ما داره تبذیغ میشه داره مورد تشبیغ قرار میگیره اینی که آقا بیاد قرآن و حدیث رو کار بردیش کنید بیاد ببینید حدیث در حوزه روانشناسی حرفی گفتن داره، آیا در روایات پیغمبر و ائمه آموزه هایی دار دار وجود داره که ما به وسیله اون آموزه ها روحی انسان رو معالجه کنیم ما آیا میتونیم با استفاده از حدیث نسخهی برای علم روانشناسی بپیچیم نسخهی برای علم جامعه شناسی بپیچیم نسخهی در علوم تربیتی بتونیم بپیچیم این میگن مطالعات میان در مطالعات میان ای دانشجوی ما تحت راهنمایی دو تا استاد قرار می‌گیره. هر یک از این دو استاد متخصص در یک علم. مثلا شما در دانشگاه مذاهب اسلامی چه رشته علوم قرآن و باشید، چه رشته فقه بخواید درباره riba و حس ربا و با بدون ربا پژوهش کنید یک استادی باید بگیرید با تخصص علوم قرآن و حدیث استاد دوم رو باید انتخاب بکنید از دانشکده اقتصاد یعنی کسی که تئوری های اقتصادی رو بلده کسی که میتونه راجع به مسائل اقتصادی صحبت کنه وقت باید اون استاد با این استاد مچ پشه و دانشوی ما بتونه یک کار بینرشتی با تم اقتصادی انجام بده یه دانشوی دیگه ممکنه یه کار بینرشتی انجام بده با تم حقوقی ناچار باید یه استاد از دانشکده حقوق بگیره یه دانشوی دیگه ممکنه یه کار بینرشتی بگیره با تم روانشناسی باید استاد دوگوشو از دانشکده ی روان شماسی بره امتخاب اینان اینا میگن مطالعات میان، رشده ای که فرض بر که این مطالعات انجام شدنیه و هم دانشیان ما تشویق میشن که این بول مطالعات رو پیشنهاد بدن بنوان پایاننامه فوق لیسانس یا حالا دانشیانی که به رده ی میرسن تزه های دکتوریشون را اگر بشه بینرشته ای تعریف کن اما هفته گذاشتم گفتم چون حالا تعدادی از دانشوی من جلید شدم امرو جلیسه ابرشونی دارن شرکت میکنن مجبوریم یه مقداری دوره بکنم سومین احتمالی که وجود داره وقتی که گفته میشه ارز کنم خدمتون جایگاه حدیث در علوم مختلف سومین اراده‌ای که از این علوم مختلف می‌روند علوم اسلامی نه علوم انسانی علوم اسلامی یعنی بررسی جایگاه حدیث در علوم اسلامی خب علوم اسلامی چه علومی است ببینید علوم اسلامی علومیه که فلسفه پیدایششون ارتباط پیدا می کند به ظهور اسلام یعنی ما قبل از ظهور اسلام تصوری از این علوم نداریم به قول امروزیان هم خواستگاه پیدایششون اسلام ما قبل از ارز کنم ظهور اسلام اثری از این علوم نمی بینیم یا تصوری از این علوم نداریم اسلام بهانه جور شده بعضی از این علوم شدیدا با اسلام گره می خورد. بعضی از این علوم ممکنه گرشون کمتر باشه حالا من عرض میکنم مثلا فرض کنید علم فقه علم فقه یعنی دانش حلال و حرام یه علمیه دیگه الان تو همین دانش ما رشته فقه داریم فقه و مبانی حقوق اسلامی علم فقه شما دیگه علم فقه رو اونم فقه اسلامی رو علم فقه ریشش برمیگرده به اسلام دیگه علم فقه اسلامی گیر خورده بازهور اسلام علم تفسیر یکی از علوم اسلامی علم تفسیره تفسیر مسئولیتش رفعه ابهام از قرآن اون تفسیر قرآن دیگه میبینید که این یکی از علوم اسلامی دیگه یعنی از زمان ظهور اسلام بشر با پدیده ای به نام قرآن مواجه شده یعنی با زهور اسلام کتابی به نام قرآن بر پیامبر نازم میشه یه تفسیر یک علم اسلامی دیگه علومی هم هستن که قبل از اسلام وجود داشتن ولی اسلام بهشون جهت داده یعنی نمیتونیم بگیم که به قول معروف این علوم ظهورشون با ظهور اسلام کاملا یکیه ولی میتونیم بگیم اسلام بهشون جهت داده مثلا فلسفه اسلام خب دانش فلسفه قبل از اسلام هم وجود داشته یه میگن یعنی فلسفه یونان فلسفه عرسون ولی وقتی که ما میگیم فلسفه اسلامی فلسفه اسلامی عبارت از فلسفه که اسلام مادش رو تشکیل میده مثلا بعض از آیات بعض از روایات اینا این فلسفه رو سیرابش کردن تقضیهش کردن بهش ماده دادن و به دلیل نقشی که آیات در روایت داره ما توانستیم سبیه فلسفه اسلام یه مثلا تاریخ اسلام خب بالاخره تاریخ اسلام یه علم دیگه شما که نمیتونید بگید علم تاریخ علم نیست یا شما که نمیتونید بگید تاریخ اسلام نداریم خب بالاخره ما تاریخ اسلام داریم دیگه البته ما قبل از ظهور اسلام هم یک تاریخی داشتیم، تاریخ ایران باستان هم الان هم موجوده، ولی تاریخ اسلام گونه ای از تاریخه که مسئولیتش رساد کردن اتفاقاتیه که از زمان ظهور اسلام به بعد رفته. حالا تاریخ اسلام ممکنه شامل تاریخ زندگانی پیامبر اسلام بشه، تاریخ زندگانی ائمه بشه، بعد تاریخ دولت‌های اسلامی بشه، بنی امیه، بنی عباس، همینطور بیاد در امتداد تا برسه به زمان معاصر که اینا دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی رو تشکیل میدن. خب اینم سومین اعتبار برای علوم مختلفه. ظاهرا در دانشگاه مذاهی وقتی که میرسن به زنگ اذان و به احترام اذان و نماز اول وقت یه یروبی تنفس میدن و بعد کلاس و دوباره از سر میگیرن. ما هم نمیخوایم بدنام بشیم که اینا نسبت به اذان خدا خلاصه بی اعتنائی کردن بنابراین ما یه یروبی تنفس میدیم به شما و این خماس باها داریم برای نماز اقل وقت و انشالله بعد از یک روز برگردیم کدامه سفر بلند و السلام و علاقه و الله و علاقه خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این و اینه خیر و ناصر و محیم و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و عالی تاهیر در قسمت اول این جلسه که قبل از نماز بود یه مقداری سعی کردیم تیتر درس رو توضیح دید که وقتی میگیم جایگاه حدیث در علوم مختلف این علوم مختلف چیه؟ که حداقل سه تا احتمال رو در زید. از این احتمالات سگان سایر سرفصلهایی که برای این درس تراحی شده بیشتر ناظر بر بیشتر ن درس بیشتر ناظر بر علوم اسلامی یعنی الان، یکی از سرفس هایی ما به ما میگه نقش و جایگاه حدیث در علوم مختلف از قبیل، فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ، بعد میگه اخلاق خب حالا فکر کنید اینا همش علوم اسلامی هم در درجه پر به اون معنی که گفتم یعنی یا اسلام بهشون جهت داده یا اسلام منشعه پیدایششون اصلا تولدشون بزرور اسلام گیره خورده بعد زمنان گفته تعلیم و تربیت تب روان شداز یعنی باز تص... یه فرضی هم هست که آیا حدیث در علم تب یه ای داره؟ یه نقش و جایگاهی برای سرسامل ویدوه کردن علم تک داره یا نداره به علاوه روانشناسی که خب یه رشته علمی از علوم انسانیه و تعلیم و تربیت این به در ادامه سخن ما عنوان سرپسرانی درس آمد. ولی امروز در, در این درس شما یک سری مباحث مبنایی وجود داره که ما یکی دو جلسه باید راجب اون مباحث مبنایی صحبت کنیم بعداً باید وارد این تک تک این علوم باشیم که من نام بودم. یکی از مباحث مبنایی یا مقدماتی که در سرفصل این درس پیشمین شده حوزه ورود حدیثه حوزه ورود حدیثه این اصلا حدیث در چه حوضه هایی وارد شده سادر شده در این جلسه که حالا یک 20-25 دقیقه بیشتر هم فرصت نیست من میخوام راجع به حوضه ورود حدیث صحبت بکنم و یک نگاه قدیمی و سنتی و یک نگاه امروزین از حوضه های ورود حدیث رو برای شما اعلام بود. ببینید شاید شما این مطلب رو از بعض از متفکران معاصر شنیده باشید که من عرض می‌کنم بعد وارد بحث می‌شم الان در متفکران معاصر یه بحث‌هایی مطرح میشه و اون بحث ها قلم قلمرو دینه اصولاً علم رو دین چیه؟ دین متکفل چه مسائلیه؟ یکی از متفکران معاصر یک سخنرانی کردند به نام حد و حد اکثر دیر حداقلی و دیر حد اکثری و این سخنرانیشون هم خیلی مشوره و بارها هم چاپ شده نگاه حد و حد اکثریه به دین. خود این آقا اعتقاد داره که اصلا دین نیامده برای اینکه وارد یک قلم به وسیعی از زندگانی ما بشه ایشون معتقده به یک نقش حد برای دین هستن خب وقتی که ما میگیم دین دین مجموعه یک کتاب و سنت دیگه یعنی مجموعه یک کتاب و سنت دین رو تشکیل میده حالا سوال ما اینه که دین متکفل چیه؟ دین چه قلم رو رو تحت پوشش قرار میده؟ یک قلم رو به حد اکثری یا یک قلم رو به حد کسانی که معتقد به نگاه حد اکثری هستن استلاحا میگن دین برای همه شعون زندگی انسان برنامه داره از لحظه تولد انسان بگیر تا لحظه وفات انسان دین برش برنامه داره دین مسئله داره دین حکم داره این احکام یا در کتاب خدا هستن یا در صلتن سنت پیامبر یا روایات معصومین این بر مبنای نگاه حد اکثری از دینه خب این نگاه حد اکثری نگاه مرسوم و متداولی که در طول تاریخ حاکم بوده بر ذهن مسلمانان و بر مبنای اونم فقها فتوا میدن شما اگر که راجب هر مسئله ای از مسائل مقتلابه انسان از یک فقیهی سوال بکنید به دخل جوابی به شما خواهد داد. اما نگاه حد اقلی نسبت به دین و کارکرد دین و رسالت دین چی میاد بگه؟ این نگاه میاد میگه که ارز کنم دین متکفل اینه که در یک حد اقنه یه دینشی به انسان بده مثلا این ها در عقل و معاده و فلسفه حیات. از این کلیات که بگذری که واقعا باید یه تبیین روشنی از مبدع از معاد بگه از زندگی پس از مرگ بگه اینا لله و اینا علیه راجعون راجع به آخرت ما یه رح نمودی بده که ما آخرتون بسازیم بقیه مسائل که مربوط به شعون زندگی اجتماعی انسان چه؟ خداوند انسان عقل داده و انسان با کمک عقل از شبت مسائل خودشو باید حل کنه دیگه دین نیومده برای اینکه حکومت بکنه به انسان یا راجب حکومت به انسان حرف بزنه حکومت یک شنه اجتماعیه مدیریت یک امر انسانیه اموری که انسان میتونه با کمک عقلش حلش بکنه اینا عرض کنم خدمتتون reactive دین نداره سنجوز جز رسالت و قلم روم دین هم نیست این اعتقاد کساییه که در ارتباط با دین معتقده به یک نگاه حد اقلی هست هم. همین آگاهی همین مسئله رو با یه تعبیر دیگه بین میکنه میگن ذاتی و عرضی دین میگن دین یک ذاتیاتی دارد یک عرضیاتی دارد ذاتیات دین همون کلیات دینه که دین به خاطرش اومده و همون حد اقلهایی که دین مسئول تبینش برای انسانه مثلا خداشناسی پیانبر معادشناسی، معاد شناسی، آخرت شناسی اینا مسئولیت ذاتی دینه از این که اگر دین راجع به یک امری که با کمک عقله ما باید حلش بکنیم اظهار نظر کرد به عقیده این آقایون اینا جز به چیزایی که در طول تاریخ بروان شاخ و به دین اضافه شده اینا عرضیات دین هستن اینا جز ازادیات دین نیستن خب حالا اگر که شما به این آقایون بگید وقتی که ما وارد قرآن میشیم احساس می‌کنیم که قرآن راجعه به امور گوناگون زندگانی انسان، مثلا آیه داره حتی قرآن به ما یاد میده میگه که بابا وقتی می‌خود وارد یک خانه می‌شید از در وارد می‌شید، از پشتش نپردید حالا یه حکم بدیهی اخلاقی دیگه خب به همین ترتیب بگیرید راجع به نوع مثلا لباس انسان که به خانوما میگه چی بپوشید چی نپوشید حکم هجاب به بردان میگه مثلا در معاملات خودتون چشی رو رایت بکنید چی رایت نکنید نمیدونم وارد حریم ازدواج و نکاح و طلاق میشه راجیب عرص و دیات و حقوق و اینا حرف میزنه خب به دقیقه اینا مساری که انسان در زندگی بهش وابسته است ارتباط پیدا میکنه اینا رو شما چی میگی و ما نزیر اینا رو در روایات داریم چون بر اساس تفسیر روایی یا تفسیر اسدی هر چیزی که به شکل آیه در قرآن ما داریم ممکنه چندین برابر اون آیه ما حدیث داشته باشیم که بهش میگن حدیث تفسیری این آقایون چی میگن این آقایون اولا سعی میکنن اعتبار بسیاری از روایات رو زیر سؤال ببرن به که چه بسای این روایات اصالت نداره اعتبار نداره و به عنوان حدیث جعلی تلیه مناسبت های اصلا به وجود ماده باشه بعد دیگه به نام پیغمبر و عیمه ثبتش کرده باشه. خب یکی از در واقع های این آقایون اینی که نفسه از سالت روایات رو زیر سوال ببرم دو اگر که شما آمدید و با کمک علم حدیث اعتبار حدیث و صحت حدیث رو اثبات کردید بعد گفتید طبق قوانین مستلال حدیث اینا از مصادیق حدیث صحیح و سنده و ما دلیلی بر جعلش نداریم ناچار میان رو دلالت عبدی این روایات خدشباره بود و به اسطلاح میگن چه بسا این آیات و این روایات اینا اموری تاریخمند سعی کنم با مسئله به نام تاریخمندی حل کنم حضرت. خب تاریخمندی چی میگه تاریخ میگه که آیات قرآن و روایات اسلامی اینا پاسخیست به نیازها و شرایط اصر نزول و اثر صدور خودشون معلوم نیست ناظر بر گرفتاری ها و مسائل انسان قرن بیستم باشه بله به عقیده اینها به اینها آیات و روایات در حال حاضر مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد یعنی از آیات و روایات ما میتونیم تبعیض بین زن و مرد رو در احکام اقتصادی نتیجه بیریم ساده،, ساده ترینش اینه که قرآن کریم میگه که آقا ارث مرد دو برابر زنه خب این که دیگه نص دیگه این دیگه نص دیگه کسی هست که در این نص شک بکنه در اسلام کی خب یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثی و دیگه قطعیه دیگه که ارث مرد دو برابر ارث زنه و میان این یه نوع نابرابریه بعد میگن که این نابرابری تو قرد بیستمه ولی در صدر اسلام تصور بکنید که اسلام در جامعه ظاهر شد که اصلا حقوقی برای زن به رسمیت اصلا حیات زن خیلی امنیت و ضمانتی نداشت اسلام اومد زن رو از اون وضعیتی که توی جامعه هیچ شخصیتی نداشت هیچ منزلتی نداشت امنیتش هم به خطر افتاده بود چون خیلی از قواهل دخترها رو در دربت زنده از زنده بگوی در دربت به تولد اسلام از اون حالت در آورد بعد حقوق اقتصادی هم براش تعریف کرد که لرجال نصیب و منمک تسبو ولن نصای نصیب و منمک تسب منطقه حقش رو در سهم ارس نصف مرد قرار داد بابا این در زمان خودش یک شاهکار بود یک انقلاب بود یک تحول اساسی بود برای حقوق زد اما حالا که قرنها از اون زمان گذشته دیگه نه ما اون حکم رو امروز که بشر با یه ای به نام حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست برای امروز هم این حکم نافذی به نتیجه این که احکام اسلامی میشن احکام تابع مقتضیات زمانی که برای اون زمان برای اولین بار وصل شدن و به تعمیر اینها عبدیت نداره عبدیت نداره. این از اون نگاه حد عقلی برنسوزه در مقابل اون نگاه حد اکثری که میاد احکام اسلامی رو فراتر از زمان و مکان میبینه و فقط میگه اگر نسبتش به اسلام ثابت شد با توجه به یک آیه قرآن که ما در آیات قرآن خدشهی وارد نمی کنیم یا با روایاتی که این روایت روایت سعی و سند بود اگر نسبتش به اسلام از و ثابت شد ما معتقده به فراعصری و فرازمانی بودن اون خواهیم شد اینو من برای شما عرض کردم که بدونید ما در چه دنیایی زندگی میکنیم و چه نگاه هایی وجود داره و چه بینش هایی وجود داره با توجه به این قضیه این درس که وضع شده برای شما که جایگاه حدیث در علوم مختلف رو انشارلا میخواد ببینه اولا با فرض این این درس پیشبینی شده که حدیث حوزه ورودش، فرودش حوزه های متنمهیه یعنی پیامبر اسلام و امامانی شیه فقط نیمدن راجب مبدع و معاد با ما حرف بزنن اینا با مردم زندگی می و درگیر مسائل مختلف می شدن. و مردم در مسائل مختلف به اینها مراجعه میکردند و سوال میکردند و اونا پاسخ میدادند و پاسخهای اونها ثبت و زبط شده و در کتابها وارد شده یک این فرض رو ما باید لنظر بگیریم که حدیث در حوزه های گوناگون وارد شده دو حدیث در حوزه های گوناگون اعتبارش قابل به اصطلاح آزمودن و تجربه است عبارتی ما معتقد نیستیم که روایاتی که از پیامبر و ائمه صادر شده این روایات فقط پاسخی به نیازهای مخاطبانشونه حالا یکی از دلایلی که ما بر این مطلب پا فشاری میکنیم اینی که معتقد هستیم در قرآن کریم یک نصوصی وجود داره مثلا قرآن کریم میفرماید لقد كان لكم فی رسول الله اسوه پیغمبر الگوی نیکوی شما مؤمنینه ما دلیلی نمیبینیم که این آیه رو مختص مسلمانان زمان پیغمبر بگیریم میگم پیغمبر جنبه اولگویش میتونه در تمام زمانها مطرح باشه نحوه زندگی خودشون که مبتنی بر سادگی بوده زخ بوده بی پیراییگی بوده اجرای عدالت بوده مهربانی بوده خب الاخره پیغمبر یه سیره ای رو قولاً و فعلاً به نمایش کداشته و قرآن پیامبر رو اولگوی مؤمنان معرفی میکنه یا ما میبینیم که خدای تباره و تعالی میفرماید که یا ایوهاللزین آمنون الله و عطی الرسول از خدا و رسولش اطاعت کنید به شکل مطلق البته حالا دنباله و قول الامرم داره آیا واقعا این یا ایوهاللزین آمنون مخاطب مؤمنان فقط مؤمنان اصر پیغمبرم و خارج از زمان پیغمبر پیغمبر اگر آموزه برای بشر آورده باشه که با سند صحیح صدورش از پیغمبر مسلم بشه آیا مؤمنین اعثار برد دیگه تکلیفی ندارن در زمینه اطاعت این مخاطب عتی و رسول فقط مؤمنین اعثار پیغمبرن؟ آخه ببینید تخصیص دلیل میخواد یعنی لازمه اینکه که شما بگید که مخاطب پیامبر تخصیص میخورن به مؤمنان حیاتشون خب پیغمبر که فقط 23 سال زندگی کرد در بین مردم بعدش دیگه رهلت فرمودن و یک سنتی از ایشون بر جای مون سنتی که شیعه به یک شکلی تدمینش کرد اهل سنت به یک شکلی تدمینش کردن بعد عملا شد یکی از ارکان دین خب حال ما اگر میخواییم رفتار دینی داشته باشیم دین مجموعی از کتاب و سنته کتابش که الله عطی الله سنتش پیغمبر عطی الرسول تخصیص دلیل میخوادیم و ما دلیلی برای تخصیص نداریم بعد مسلمانان زمانی که کتاب‌های حدیثی رو نوشتند، من این رو میگم و یک مطلبی رو هم به شما پیشنهاد میکنم اگر تا هفته آینده رسیدید انشالله انجام بدید ببینید ما میخواییم بفهمیم حوضه های ورود حدیث چیست؟ راهش اینه که به کتاب های جامعه حدیثی مراجعه دید. در تجربه های قدیمی کتاب های جامعه عدیزی مثل چی؟ مثلا صحیح بخاری بخاری آماده کتاب خودش رو در صد کتاب فرعی روایاتش رو طبقه بندی کرده یعنی جامعه بخاری چند کتاب فرعی دارد؟ صد کتاب بعضی از اناوین این کتاب های فرعی ین فره بعضیاش تاریخی بعضیاش اعتقادی بعضیاش اخلاقی و معیشتی و معیشتی. شما فقط یک نگاهی بندازید به اناممین کتب صدگانه صحیح بخورید متوجه حوزه های ورود ادس خوابید شد خب، به صحیح مسلم مراجعه کنید مسلم صحیح خودش رو در پنجاو و چهار عنوان فرعی طبقه بندی کرده یعنی یه مقداری طبقه بندیاش دروشتره کلیتره بخاری طبقه بندی ریز کرده مسلم طبقه بندی دروشتر کرده صحیح مسلم پنجا و چهار کتاب فرعی دارد البته اکثرش اناوین فقهیه ولی حالا جالبه بعض از اناوین فقهیه ما بو بوی اقتصادی میده مثلا فرض کنیم ما کتاب السلات و, و کتاب الحج داریم ولی کتاب و هم داریم زکات دیگه چه بویی میده؟ بوی چی میده؟ اقتصاد دیگه یعنی زکات اینه که تو یه بخشی از مالت رو از مالت اخراج بکنید به دست فقیر بدی برای حل مشکل فقرا بعد ما کتاب المساقات داریم کتاب المزارعه داریم کتاب داریم. تجارات داریم تجارات یه بحث کاملا اقتصادی دیگه اینا حوضه های ورود عدیس ماست در شیعن بیاد همینه مثلا فرض بفرمایید کلینی سه... کتاب الکافی خودش رو در سی و چهار کتاب فرعی طبقه بندی کرده از این سی و چهار عنوان کتاب های فرعی الکافی حدود ده تاش فقیه که بردیده به جنبههای گوناگون حیات مسائل اقتصادی، مسائل عرض کنم خدمتتون اعتقادی، مسائل اخلاقی و معیشتی رو در بر حتی نام یکی از کتابش کتاب المعیشه است. تو این کتاب کتاب غیر فقهی. 25 عنوانش هم فقهیه. که تو توی اون 25 عنوان فقهی بعضیش بوی مسائل اقتصادی رو میده. ما الان امشب وقتمون تمام شد اما کافیه که شما الان تو این کتابخانه برید و یک نگاهی به اناوین کتب فرعی جوامع حدیثی به اندازید خب این کار کار تاریخیه به دوران معاصر می رسیم روایات طبقه هایی شده ناظر به نیازه های روز که مثلا من برای شما گفتم در کتاب حکمت نامه پیانبر اعظم یه فصل داریم به نام حکمت های سیاسی یک فصل داریم به نام حکمت های حقوقی یک فصل داریم به نام حکمت های اقتصادی یعنی طبقه هایی که میشه ناظر بر اصطلاحات و عنوان های امروزینه این نشون میده که در هر زمانی باید روایات رو یه طبقه بندی مناسب با مسائل اون اصر و اون زمان انجام داد بنابراین فرض ما بر اینه که دقت کنید ضمن که عقل معتبره عقل اصالت داره ولی در این حال حقیقتا دین در حوزه های گناهونی از حیات زندگی فردی و اجتماعی انسان وارد شده حالا امروزه میگن ورود کرده ورود کرده غلطه چون ورود فعل لازمه نباید بگیم ورود کرده باید بگیم چی؟ وارد شده و ما آثار ورود دین در حوزه ها و قلم روه رو در طبقه بندی های محدثیم باید ببینیم که قدما به یک شکل طبقه بندی کردن در کتاب های جامع و امروزی ها به شکل دیگری طبقه بندی کردن انشالله اگر که فرصت کردیم برای جلسه آینده سعی میکنیم یه نمونه هایی از انوامین این کتاب های فقیر رو از کتاب های قدیم و جدید براتون بیاریم تا متوجه حوزه های ورود عدیث بشوید. بله <تصفح> والا فعلا نه. ولی الان داره درس من ضبطم میشه. و فعلا نداره البته یک مقاله هایی که مقاله ها به یه مناسبت های چاپ شده من از آثاری که شده در حد مقاله چاپ شده. تا جایی که بدونم به شما معرفی می کنم از جمعه ببینید دانشنامه جهان اسلام شماره دوازده مدخل حدیث مدخل حدیث این اینو گیرید بگیرید یه بخشیش مربوط به این درس میشه. دانشنامه جهان اسلام شماره دوازده یعنی دانشنامه جلد‌های مختلفی داره جلد دوازده مدخل حدیث یه بخشایش اینن مربوط به بعضی از سرفستهای این درس میشه ولی هنوز کتاب مستقلی ما نمیدونه شما معرفی بکنید ولی آثاری که موجوده و من شناسایی می‌کنم اینا رو به مناسبتهای مختلف براتون معرفی خواهد فصلى الله على سيدنا محمد رید.